بالله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام آرهان سیدنا رسول الله و آله القیبین الطاقین المعصوم من لحظه دائم و تعالیه مجمعین و محوظه دائم برحمتی برحمتی هر چطور که برای یک مقدار ده. توضیح بیشتر مطلب مجموعه یه رو که روایاتی رو که اهل سنت در غیر آیه مبارکه لحوال حدیث آوردن بخونیم پرس کردیم اینها یک روایت خیلی مهمشون از عمامه باهری ان رسول الله در غیر آیه که متون مختلف داره و توضیح داده شد که خب مشهور اهل سنت اون حدیث رو قبول نکردن چرا ترمزی آورده بر زیگر آورده، اما مفتن سنن حدیث روشن نیست و اما از صحابه از صحابه بطابق و تابعین و تابع و تابعین که رازی آزیاد نمی یه مقدارش دیروز خوندیم از کتاب نهو اقتصاد از کتاب عددور المنصور یه ده پنگ قفه 158 تا 160 به اصطلاعشون شروع کردن یه مقدار دیگه شده اینشالله تعالی روزنو کنیم تا ببینیم بره و اخرج من دیگه مصادرش رو برغم نمی‌کنم و ان رافع ابن حفص مدنی قال هر به آن داین زر الله علیه در یوم القیامه اینم ما داریم به عنوان خمسه تون که خوندیم تو ما البته سردش معتبره از صاحره و نائحه و المغنیه و مرعه مع المرعه نسخه جلاله از همین هم جنس واجی که اول در زمانه و قال من ادرك ذلك زمان فاولا به طول حوزه این هم یکی دیگه از روایتی که اینجا دارن که ما نداریم از علی ابن حسین رضی الله از امام سجاب که عجیبه ما که شیعه می روایت پیش مانیست. ما نیست ما قدست امتان فی هم برابر یا برابر حالان که مساله رو ما نیست نخوند این همین دیگه ما تو جامال احادیث البته این هم یه است که در جامال احادیث که مقواه بروزی نوشتن نگاه نگ مثل اینجور روایت هم بیاد روایتی که منتقی بحلبک میشه اینشانه وقتی یک صحبتی میکنیم که اگر بنا بشه یک جامال حادیثی نوشته بشه معیار که حدیث در اون بیاری چیه؟ یکی از معیارهاش مسلم اینه که برگرد به بحلبک و در مصادر سنیار و در مسادر خواره خوارج هم درمیان علیه نرمی کافی؟ <تصفيق> ما خوبه از آید. هر کس داره. اینجا خوندم خو... این پس شاید من یادم برسه. علاوه بر ما خود شده امتون فیه هم برابر یا بربر این روایت از امام خراج. باز عبدالرحمن بن اوف از رسول الله این عبدالرحمن همونه که نبی او خیلی به غنا علاقه داشت. ابراهیم بن سعد بن عبد الله اوف ر... عوف الرحمن اوف اینکه از علمای مدینه هم از محدث بزرگه و خیلی به قناع قلاقه داشت این شخص نبینه قاله اینمان نوحی تو انصوته این احمقه ای این هم تو مسادر ما از کتب احد سنت آمده حدیث معروفیه و یکیشم به اصلاح و لظام از همین در روایت سماه بود سر تو اجر مغنیته و نائهه از اونجا فکره هرون این مغنیه و نائهه مغنیه و نائهه این اشاره به اینه چون حدیث از پیغمبر مرمون کردن من را حرز کردم در بار سهل اوقات یک سنت مردی هم رسولال را سوال میکنم خود دخلت کنی گاهی اوقات بر اون سوال سآل میکنن. یعنی گاه سآل کنی پیغمبر پرموده نما نحی تو نحی تو هم یا نحی تو هم گاهی وقت هم تفریح اگر که من بر نهل فرموندن احضه اوجت ها درک درد بکنیم انا عجر المغنیت و نائهف و کره اینا تفریحه دست سلطن اند نقمت لحب ولعب و مزامیر شیطان و سلطن اند مصیبه این آخر حدیست بعض عدل حسن سلطان ملعونا این حسن مراد حسن بسریست که معروفه بین احضه سنن که نراسی رو زیاد داره و دهی از علمان اهل سنت مرانسیل حسن رو بر مصانید دیگران هم ترجیح میدن شخص صرف معروفی است به این اون باز اخرج یه عبدالدنیا در اینجاز اکثر احادیث از ابن عبدالدنیا یک عبدالدنیا دارن اونا معمر مغربی اون عبدالدنیا تضاب و دجال و سال شیستد اضاب میکنن صحابه رسول الله هم یم نه دنیا از اول آشنا گوش نگه نگه می‌شود که آن نکنیم که دنیا مرا اون شخص داد جاله آخر جهان نه دنیا ان اناسبد ماله قله آخر بهتر کس کس و ماله حالا خیلی عجیبه که ایشان در مبینه که معلق نبودیم اتلاف رو گفته باشند. مخفض دیگر ای این حدیث نهایی نیست از عبد الله بن عمر از نافه نافه حفظ کرده این که برمه دارند در کتاب اهل سنت آثار معروف عبدالله عزیز عمر پرسته دو نفر یکی سالم یکی نافه سالم پسرشه پسر عبدالله سالم ابن عبدالله نافه غلامی شه مولا عبدالله این خیلی آثار داره یک مناظری هم بینیشون ایمان واقعا هستی در بحث تلاح خوندی که از ها سرموندن که از یک تو درو اونگی ایمتا رو گفت ان نافه لكن روايات نافه عن عبدالله الله بن عمر خیلی زیاده هر چقدر می‌گم انو که تکرانونن بعضی از اهل بعض سنت یه بحث دارن از اهل که اهل الاصامی چیه اون سندی که توش مالک و نافه بن عمر این اهل میدونن میذارن لكن خود ما داره که باقر به همین نافه فرزند کرده سر عبد الله را درو میگیم مثلا علی قال کن تا معنسی ما... و عبد الله بن فیزهره لیل تصمه زمارت راه اینا خیلی مجید که چوپان بود یعنی مجلس رقص اینا نبوده فوضع اسبعی ازنه دو تا انگشت تو گوشش کداشت سم عدل عنه تایدور شد فلم یا یه ذریعور یا نافه تو میشنوی تو به غلامش بله حتی قلطلا تو گفتم نه فا اخرج اسبعی ازنه دستاش داره بود وقال حاکده رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم سنه, سنه منم یه روز با پیغمبر همین کاری که نه از آن پوترست داری من گفتن نه که پیغمبر این روایت رو هم نه کردن برای این که مثلا غنا باطله ابن هم در محل دا تصادفن اونم به جواز شده هاست اونم تمثل به این روایت میکنه بیگه اینا اشتباه, اشتباه تمثل کردن بیگه خب چطور شد نافع که بوشون گ نافه گی گوش می‌گرد. خود عبد الله بن عمر گوشش بس ناففه گی گوش می‌گرد. و یا مثلا پیغمبر اکرم با عبدالله و عمر عبدالله نهمر گوش می‌گرد. بعد چطور چه پیغامه این کارو این خب دروشو باز بگیرن این پیغام از میشی بزارن مثلا دور بشه. چه فایده‌ای داره؟ یه این معلوم میشه که این جایزه. لزو اخو دقت می‌کنید چون این بحثی شما خب ما راجع به احوال عبدالله و رو روایات ایشان اعتباری نداریم. این یک بحثی بین اهل سنت شده. این روایت عبدالله نامه دلالت بر جواز میکنه یا دارد بار عدم جواز مرسن چون چون میگن اگر که ممنوع بود یک کان رسولای نه ها در رائع از دو خب حالا فیغمبر گوشتونه یا عبدالله نامر که باز در مقابل اونا جوادن این جواب ابن هست باز در مقابل اونا جوادن که شاید عبدالله نامر هم بچه بوده مثلا 13 ساله بوده <تصفح> قبل البلوه شاد نافعاً قبل الغنوق بوده تو این قصه و اینکه رسول الله جنون کار نمی‌کرد چون اوائلش اولدوم رسول الله به مدینه بوده اوائل مدینه اوائل هنوز احکام رو پیغمبر اجرا نمی‌کردن هرش طرفین با هم دیگه که این روایت که آیا این روایت يدل على الجواز یا يدل على المنع مشخص شد دو طرف فقیه بحثش در اومد برای شاگردان کتاب اهل سنت ماجر این شما اصطلاح بیارش برامون بعض از عبدالله نومز سن النبی فی یاد الاهی بن و نیشته دحول حدیث از ترکم بهدن حدیث در اینجا از ابی امامه باهلی از رسولایی که گذشت باز حاکم در مستدرکت کنان اطفال خراسانی ایشون جزه تابعینه این روایت اطفال گذشت یال تکار شد آره نظر فاید الاهی بن الناس و نیشته دحول حدیث فلیقنا و الباطب المزامیه باز از مجاهد ناز و, و نیشته لحل قال هو اشتراک المغني، مغنی و مغنیه به مال کثیر. یکی اینکه بخره استال به اعلاممثل این م هم خریدن حرامه و هم گوش کردن به خود خدا باز از ابن مسعود رضی الله عنه قال في من الناس و نیشته لحول قال هو رجل و نیشته ایجاریت تو لیلن آو اون نهاران البته آی اینجا جاری هستند مثل مثلی به بحث نشی جاریاتون طلحی اسناد فعلی بود اسناد حدثی نه اسناد اشتقاقی ان تو خلال بحث آینده ای که درود خود بود فرق فرق بین اسناد اشتقاقی که مغرمیه باشه با اشتقاق فعلی که ترنمی مثلا مغرمی ان شاء فرق دین این دو رو از نظر تحریر لغوی بعد عرض می‌گزارم خب این راجعه به معلوم شد که اجمالا اهل سندت از صحابه و طابعین و غیرین ها روایت دارن راجعه به منیشتری لحوال حدیث لیوغل لهم سبیل الله در کتاب ارته من خلاصه شویم عمده اشکالی به استدلال به این آیه مبارکی اینه که منیشتری لحوال حدیث لیوغل لهم سبیل الله و یتخیبها هدوها این شون میگه چون آمده یفتخیز را هزوان این در نمیاد که شرائه لحول حدیث باطله رزایشون شرائه مغرمیه رو جایز میگونه شرای شکنگ رو جایز میگونه میگه که شرائه لحول حدیث باطله اون یفتخیز را آیات اله هزوان حرامه باهال این کسی لوکان یصل بیره یفتخیز آیات اله هزوان حرامه نه مخواد حدیث یعنی این آمدن گفتن که نکته شرائع لحول حدیث نیست نکته ید الله ان الله و یتخیض آیات الله یتخیض سبیل الله و الله و, سبیل الله و, و من چند باری هم در بحثا گفتم حالا بیم مناسبه اینجا می میخونیم خود بخاری در عناوین ابوابش خیلی دقت داره خیلی انصافن هم خیلی مثلا شبا ده ها باب رو یهونه اناوین احوابش رد بر ابو حنیفه است. ناز چون بخاری با ابو حنیفه بحث اخباری های اهل سنت با مدرسه رائے که مثل ابو حنیفه از قیاس، مکتب قیاس به شدت مخالفند. اصلا بخاری این کتاب بخاری اگر آنی خواستن نگاه بکنن، اواخر بخاری کتاب است. درونم استعلام، کتاب یک باب به با آخر این کتاب، کتاب یک باب قبل از آخر. باب رو اینجوری گفته باب کل لهن باطل ببینید اذا شغل هم طاعت الله <متده> و من قال صاحبی تعالی ابامر که حال این بحث دیگه از بحث قوانی شما میگی و قولیه تعالا و من الناس من يشتري له ولحدیث ليزل عن سبيل الله درک این مخالی با چه لطافتی یعنی بخاری مثل حدیث مثل کلام ابن هست بخاری مخاطب که این آیه مبارکه نازر نیست به اینکه خود لحول حدیث جایز نیست چون کمی روز وقت من در این که تطمیه استضلال به رو توضیح بیشتری بریم بعد متعرض میشن این روز برای تطمیه کلمات اهل سنت چون ما برای که دو تا از کلمات اهل سنت رو متعرض بشیم یکی کسانی که اصرار دارن در روایات و اون طرف که یجوز یکی روایت این طرف که یجوز حالا این ربایت دور المنصور خوندیم مسادرش از صحابه و طابعیون و به اصطلاح فقه و اما برای تطمیم وحث از اینجا از کتاب گرتبی هم برای آشنای بایشان که تلی بردادیشانه در جلد 14 تفسیر گرتبی هست به صفحه 51 تفسیر سوری لغمان ایشان از اینجا شروع میکنه ورود ترمزی انعبی امامه غیر ترمزی هم نعم کرد ان رسول الله از کنم مهنده حدیث در زیده آید ان رسول الله تا, تا به همین حدیث ترمزی است قال صلوات الله سلامه علیه لا طبیع القینات ولا تشتروهن ولا تعلمهن ولا خیر فی تجارت فی و رسمنهن حرام و فی مثل حالا اونزلت حاله العیه حالا این کلام از رسول الله زاهم تو مدینه باید باشه چون آیه تو مکه نازل شده حرص کردن در بعضیش داره و فی حالا انزل الله علیه و از بعضیش داره هستی قضاله که قول الله تعالی ها. این سه چهار جور این حدیث ابو امامه در مساجر مختلف در کتاب ترمذی این طوره فی مثل حالا این عنوان عامه لیکن شامل این هم میشه اون زلطها دهه و من الناس منیشتری له الحدیث لیغل عن سبیل الله غیر علم الى آخر الآیه قال ابو عیسی از این در کتاب ترمذی که از خوال کتاب ترمیزی تو بعضی از تومیان معترک کتاب ترمیزی اینجا در مقیه سهار مثلا مزیدی داره در زیل روایت ایشان استخراجات دیگه حدیثم میکنه مثلا این حدیث که نفضه از فلان و فلان و فلان نفره. یا تو خود هم مناقشات میکنه و چون چاگرد بخاریم بوده بعضی از مناقشاتم از بخاریم اینو آشنا شدن با مسادر اهلسان نسته در این جردش الان تو ذهن من از همشون بهتره خود اونا میان سنیم حالا ابو ایسا گرم تلمزی حاضا این نماویور وامین حدیث القاسم، آن ادي امامه اصلا نمیشه اول اسمشان حافظه حافظ البته سراندا کامل نی ول علي يزيد، القاسم، ان سه قطعه خود القاسم، ولی این چون حدث من گذاشته دستای رجالی اهل سنت نزدیک، آمی شخصا من و علي يزيد، اشقالش البته علی ابن یزید دی زیاده از اهل سنت تذییف کرد بعضی هاشون دو تا مثلا منزل مجموعه رو توصیف کردن دیگه مواد بحثه رجالی اهل سنت میخواهم بشن چون راست چیز اینجا لازم قالو محمد بن اسماعی این محمد بن اسماعی در کتاب ترمذی که خیلی زیاد نیست شاد من اون واقعه‌ای که من دیدم شاد مثلا افجر موردش خیلی زیاد نیست بخاری شواهد بخاریه آراج استادش بخاری رو در این دو نهمون بود این هم ای با کتاب اهل سنت آشنا میشین من گوید اندر میخورم که با مسادر اونها تستفکر اونها آشنا میشین قال ابن عطیه این قال ابن عطیه دیگه از کلمات قرتبیه از ترمزی خارجون و به حاضا یعنی اینکه که غینا مراده از آیه ست فره ابن مسعود و ابن عباس از همه مهمتر ابن مسعوده بشون که سننش درست و جابر البته گفتم اون سنن ضعیف و مجاهد این سه ابن مسعود و ابن عباس و جابر از مجاهد از تابعی و ذکر او ابو الفرج جوزی ابن الحسن که اینجا حسن ابن به اصطلاح یصار بصری حسن بصری و سعید ابن جبیر که ایشون هم به اصطلاح شکیل ابن عباس و نقداده و نخعی ابراهیم نخعی قنط خرج قرطبي هذا اعلى ما غير فيا دل اياه وحلف على ذلك ابن مسعود بالله النبي لا اله الا هو ثلاث مرات انه الغنا روى سيد ابن جبير عن ابي سهلاء ان بكى قال سئل عبد الله مسعود بقول الله تعالى اولی تالا من الناس من يشيل اول الحديث فقال الغنا والله الذي لا اله الا هو این دقت بکنید نگو گفت منهل غنا اصلا این آیه در خود ناس چون مثلا در زیل آیه بشتن بگو قول ازور امام فهم منهل غنا فرق این دو تا منهل غنا اما اینجا عبدالله الله بن مسعود میگه و الله الذي لا اله الا الله الکلام یرددوها ثلاثه مرات سه برتبه قسم خود که آیه مبارکه ناظر از برون و عن ابن عمر انهل غنا این هم از صحابه است. و کلاله قاله اکرمه که از تابعینه. شاگرد ابن عباس و نیمون ابن مهران به نظر بعد از تابعین باشه. و با مکهول. اون هم به نظر از تابعین. ورلا شعبه به اصطلاح شعبه از و سوفیان سورینا از فقه هم. اندل حکم و هممان هممازی ابن عبی سوفیان و عبی سلیمان اند ابراهیم نخیلی. قال قال وقال مج... مجاهد. وزاد و مجاهد و زاد این الحسن که مورد حسن حدیث بر آلات مسلی معلوم میشه خود آلات هم زدن بدون اینکه صدا هم باشه اون هم جزو لحوال حدیثه و قال قاسمان و محمد که دیروز ارز کرده جزو فقای سبعی این نکته مهم میشه اینه که اینه اگه از بزرگان مدینه هستند هستن معلوم میشه در مقابل انتشار غنا در مدینه ادهی از بزرگان اصرار داشتن که اینه حرامه و قال قاسمان و محمد که نوه ابو وکل و پدر خانم امام باغیر سامون الله علیه الغناه و باطلون و باطلون فننه وقال ابن القاسم این از شاگرده مالکی این قیل خاصی مهمه من واضح سأل تو مالکم ان فقال قال الله و سألا بعد الله بعد الحق افه حق اون اف این مطلب رو ارز کن از چند نفر نه رو شده از چند نفر این مطلب رو نه شده و تا اینجا اقوانی که این به معنای به اصطلاف و معنه حسن ایون خوال کفر و شرک این لحول الحدیث این کفر اصلا بردیگه و غنان هم داره همینی که شیخ انساری هم اشکال فرموزن فرموزن ظاهر لحوه حدیث اینه که اون کلام باطله نه کیفیت نه به غنان و, و, و این لحسن ایون خوال کفرو و شرک و این برای دیگری به جز آراایی که در مثل اش و ت اول حقوق و علل احادیسلدتی اطلا ها به اهل الباطل، و لا و دیر نظر از نظب ناارث آرس کلده که ع کهقصشون لنه اشتراح خودبلعاجب از کل اسم رستم هم که داره اشترا خبل عااجب روتن و اسفندیار و کان یک سرمکه به اضقال ازخوررش ان محمدن قال کللا زحی که می و حدس هم به حدیث ملوک فرس قصه رستم و اسفنگی ها رو نرمون کرد و ایرانی رو و یک قول حدیثی ها دا احسن من حدیث محمد هم اضافه می که این قصه که من میگم بهتره حکاق و کلبی و غیره همان و غیره کان اشترال بغنیان هل بله. البته در این مطلب بعدی یوشع محمدی اشتر ها در زیدش این شما میگم در مطالب دقت بشه میگه خودش کنیزه مقدسی رو و به افراط میشورست درطاق مسلمان بعد میگفت که و حالا خیر رو بممایت او که علی محمد من از و سیام این بهتر از نماز روزه سر مشغول این کارا بشی و انت قاتل بین یدی فکر کنم این اشتباه شده باشه این بهتر از نماز و روزه و با بین در مقابل مثلاً بینیده اون به جنگی. چون در مکه جنگ نبود اصولا تو ایام مکه که ایام نزول این آیه است جنگی مطرح نبود اولین جنگی هم که در مدینه مطرح شد بعد. این نظرم شما اون جنگ بعد کشته شد مثلا قبل از اون مسلمان جنگی نداشتن بگرم تو قاتل بینیده به نظرم میاد که مثلا شاید یا اشتباه نهبش شده یا تو بعضی از آیات مکهیه اصلا فتحال بوده به الا با شوال تاریکی این زیده می سازه نماز روزه چرا؟ همتون روزه هم روشن نیست چون روزه در مدینه پشکیش شد. تو مکه مصمونات تکلیف روی روزه نداشتن هم روزه روشن نیست هم تو قاتل بینیده روشند نیست بعد و قال تایفتون اشراع و آیه مستعارون سارته از تائه احاسه پرش و و هم به عمل اسلام و خروج به باطل بله فکا ف... قال ابن عتی الا راز عقله شد فکان ترک و يجب فعلو این مطلب که این شرار در اینجا یا شرار حقیقی مراده خیر و یا ترک ما و فعلو و انتصال و حاضر یک منکرات شرع ها شراب الا حد قوله تعالى: "اللّه كَلَّذَىٰ نِشْرَى و قال مترف مترف شراع و له به لحیس استهباب خودش میاد. قال قلت تو خود عرض می‌کنه، عرض جزء اندولسی که می‌رسد لامان اروپا، جزء اروپا درست. یا اصطلاح قدم دنیا دنیا اسلام مقاربه قول اول اولا ماغیل بی فی هاد الباب که قناهش لیل حدیث المرفوع فی یعنی حدیث عن رسول الله و لقول صحابه و تابعین فی و غزاد سعلبی و الواحدی فی حدیث عبی امامه مما من اهدن یرک و سوطه و بالقناه الا و اصل الله علی شیطان خوندید تکرار و ذرعه قرمزی و غیره من حدیث Anas و غیره عن النبي قال سلطان ملعون حاجر امروز هم خوبی. و ذره جابر بن محمد ان ابيها ان جابه ان علي عليه السلام این رو ما الان نداریم دیروز اشاره کردم این از ابو عمامه باهلی نقل شده و اسانیدش خیلی زیاده حتی احمد هم آورده در مسند اما ما نداریم این خیلی هم عجیبه بروا جعفر انا عدیه انا علی انا علیه علیه سان قال, قال رسول الله بوعستو به کسر مزامیه این هم در روایت ما من ندیدم و خرج ابن بشران ان اکرمه انا ابن عباس قال بوعستو به هدم مزامیر و تند و نود ترمزی من حدیث علی ایز ما داشتیم اضافه ار از امتی خمسه اشد خسله بهل بلا در... این در های رسا نهار کردیم این در های و پی حدیث ابی حرره و روحرت القیام من و ان باز سندش بعد میزه و روا ابن المبارک عبدالله مبارک ان مالک ابن انس ان محمد ابن من منکدر ان انس ابن مالک وار قال رسولا من جلس الى قینت یسم و منها صبح بفی یوم باز بله یک بباید ما در بباید خودمون خوندیم از محمد علمون را که به نهب بلغنا نه نهب نکرد نه نه این عبادی الَّذین کامیون از ذهون انفسهم و اسماعهم ان و مزامیر شیطان احلوهم ریاض المسل و اخدروهم انیق از احلل تو علیه هم رضوانیم شبیه اینم بازاشتیم ما هم بود باز بله سم یکولو دل ملائه حیلی حدیث قشنگ یه اسمهو هم همدی و شکری و صنایی در مقابلی که در دنیا اون ملائهی رو گوش کردن و اخترو هم اللا خوف علیه ملائه هم یهزن هم این من مخصوصا از این کتاب چیز کنم چون ایشون زارن کماردش و باید ایشون اضافه کرده باز از روی مرکوان ها در معنامه من حدیث ابی موس پس خود ابو موسی اشعری خیلی خوش صدا بود. در ابو موسی معری شری معروف. ایسر رضوی عبدالله خیلی خوش صدا بود. وقتی قران رو خیلی زیبار می خونده. خیلی عجب قرآن قران می خونم ابو موسی. من استمع الى صوت جنائ لم يعلم ان يسمع یا روحاني. قال يا من روحانی قال قر را اهل الجنه. و لازم به حالا من دیگه مصدرش نمیدونم. کل و کل دلیل که سریهال معنا علاوه ما یعنی و هموناش و من روایت مکهول انعارشه اینم من الان من ماته ونده حجاریت المغنیه فلا تو سلوا این بله اینم راجع از آثار و ال و غیرها خیلی عجیبه این ما یکی از چیزی که در کتب احل سندر حواس مانه حسابی کرده یه ازشون میگن قناه جایز علماء اینجور گفتن یه ازشون میگن ایشون مثلا و لحاظه آثار و غیرها قال العلماء به تحریم غنا. این عبارتی ایشان مجرمه به تحریمه این عبارت قرطبی و ایشون میگه که القناه المعتاد این در مشتهقینه به حالا ایشون تفسیر موضوعیش هم میکنه اللذی یو و النفوس علبی یو حرک و ساکر میایب اصل کامل فهالنو ازا کانفی شعر یو شب و وفیه به ذکر نسا معلوم میشه این کتاب و کسانی که ازشون از ما نهار میکنه معنا رو هم در جنا تأثیل میزن معنای اون کلام رو فقط کیفیت سلامی و وصف محاسنه هنه و ذکر خمور و المحرمات لا یختلف فی تحریمه فکر نمی این مدربیشون در, در می باشی فکر نمی کنم زارا احساسانان اختلاف دارن حالا برحالشون که لا یختلف و بیترین من فعلا نقل قول می و گفت که, که منفرمه که ادینو اینا اینطور و انها لحوه و غناه و مضمون به اتفاق خیلی عجیبین عبارتیشان خیلی غیبین فا اما ما سلم منزاله فیجوز القلیل و منفی اوقات الفره خیلی عجیبی این نکته که مثلا در کلمات شیعه مثلا برای اولین بار تو کلمات دعایم و اینها بود که اگر خالی از باطل باشه یا شیخ توسی اینا از خود اهل سنت هم اینو گفتن اگر اینا توش ما سلمه منزاله کلام باطل خیلی عجیبه ها انصافه فیدیوز و غلیل و منفی اوقاتی سره کل عرصه عید و, و این در تنشیف علم اعمان شاخه پس انگار وقتی خندق رو حفره خندق می‌زدن شعر می‌خوندن اللهم لا اله الا انت و سرنا برا چوب شبیه فتوای اولو موس خیلی عجیبه شیخ هم میگه اگر فقط شعری بخونه که باسه نباشه و توش به حساب رجال و داخل نشه ایراد اشکال نداره اینا میگه ارث و ایت و این در خیلی عجیبه که با این ایشون اصلا با علمان های رابطه ندارن علمان ما با ایشون رابطه ندارن خود ایشون که در اندولست از بر دنیاست است اروپا به اصطلاح خیلی تعجبابره که چطور مثلا در یک برهه از زمان بدون این که ترابط فکری به یا بوده ماها خبر نداریم ترابط فکری باشه تقریبا نتیجهش مثل هم میشه کما فی حفر خنده و حد و انجشه محبومی شیخ عبساری هدا گفت که خالصه این هدا همونو میگه و سلامتی مند اتوه این دوتا شعر هدای خوب میکنند و فا اما مبتدعت و صوفیه چونها مجالس سماه داشتن البته همه ی صوفیه به عدهشون من الیون منال ادمان الا سماه المقانی بالآلات المترون منال بابادی دیگه یه نهره یه نقداری از این اسمایی که میشون بردم اون طرفیه و هم این طرفیه که بده ما هم متارف و تار تار نوشته با تا لكن همون تار که همو در فارسی و معاذ و او تار چه حرامون این مثلا نمیگن که صوفیه به کار این هم حرام بعد یکی دو تا قال ابن العربی ابن العربی صحیحه مالکی دروسیه ابن عربی بدون حلف این همون عارف معروفه این چه وضعیه ابن العربی با الافلام تقیهه اونی که اون آره به من فقال ابن العربی اما تبدیل الحرب فراه هر جفی لرنه او یقیب النفوس و یره بلعدون و پر یراعت ترد و دفت و مباخون بعد ایشون وارد بل ایشون قصه نهارو میکنه زور به بیم ید یه نبی صلی الله علیه و علیه وسلم یوم دخل المدینه داره که همون زنهای برین اکجار آمدن و با دفت میدن ولی جور گرم نفسوله بله از میکنم فهم ابو بکت به زرد خیلی عجیبه چند جور که نفسوله که ابو بکت جرمیشون میگفته و پیغمون خود اشکال نداره فقال رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم وسلم دعفن یا عبابت حتا تعلم اليهود اندیننا فسیحان این هم خیلی عجیبه این مثلا یعنی مثلا پیغمبر میگه برای اینکه یهود خوشحال بشن شما به منترات انجام بدین اگر این مطلب جایزه اونطور تعلیم یهود خود رو یعا بدونه ازاکان جایزه این از حتی تعلمان یهود دین نفسی هم فکنه یذارب نبعه قرنه نحن و بنات نجار یا حتی ناقص نرشته نحن و جواب نحن و بنات نجار حبدا محمد منجار این ناقصه اون ش... شعری در کتاب سورن امن ماجد نحن و جوار نمبنات مجا یا حب بدا محمدون منجاری شعر اونطور اینجا ناقصه باشته الا دو ساعت و که رفتی نبید. بعد کشون بایده مخلی میشه با قول خودش روشن شد مسائل که از کجا ریشه هاش صحبت شده اشتباه و بلغنا حل از دوام سطح ترد و به شهاده فه اینلم یدون گاهی و غاد لم تورد و رگر ایسر نو ایسر اصحابان ایسر تبا آل سأل تو مالکت نهرست من عمدن میخوندن چون خود اشرا مالکی این یک و بعد چون در مدینه مشهور بوده که غنا جایزه این از اینجا سأل تو مالکت نهرست اما یرخ صوفیه اهل المدینه مدر غنا چون مدینه که دارن نهیزه هم غنا رواج داره سأل تو مالک ابن عمد اما یرخ صفیه اهل المذیبت من الغنا فقال اینما یفعله و ایندنا الفصا درسته این در مطلب هست اون مدینه لیکن این که انجام میدن ما این باید میدنیم که چون میگم در کتب زیاد ذهب شده که مثلا در مدینه جاری بوده یکی از شهادتای خیلی لطیب در این هست که حتی خود مالک هم کار یه ممایت ال اننا الپصال و این مطلب رو هم من از کتاب مالکی ها در چون خود اینپورارتنی و مالکی و ذکر رووط تهیه قال من بعض ات ن چون طولانی نمی میشه. طولا قال مالکم اما مالکوم نه است ف نهو نه الغنا و ان استعماری و قال عجب از اون ازذشته را و وجده ها کان له و رده ها بلعید یعنی اگه جاریه به ظاهر قیمه از این پنجاز بوده هم بوده به خاطر مغنیه بودن هزار کان له و رده و هوه این عجیبه مذهب و اهل المدینه خیلی تعجیبابن <تص> ما واقعا متحیر از اون و معروف که در مدینه همه گوشی کدن یعنی و همه که غیر از اهل وزینا و از ایشون میگه مذهب و سایر احل مدینه اهل مدینه مذهبشون این بود الا ابراهیم سعد از کلم اربراهیم سعد ابراهیم سعد ابراهیم سعد ابدالرحمنون فه انهو فکاهان و زکری رازی انهو کان لای را بیهی بعد نهو میکنه از یکی از خودشون اما مالک فیقال انه ان کان عالما بالصناعه و کان مذهب و هو تحریم تحریما بعد یه قصه اینا میکنه که مالک میگه من اول بکی رو قبول مطرح بوده گفتم دوباره بنا دیگه منس مالک بعد مادر هم یه چیزی گفت که نز به شتیف نیست نمیخوام اونجا بگم خلاصه مادر گفت واسه در این کار نمیخوام اون وقت دو مال فی افتادن اصلا فقط گفت که فقط لو به حاله 100 است فصل رو بر علوم دینیه بار دوباری که به این به درزم مخندی بودن نمیم خود این از اینشون اینجا صحیح تو حالا خیلی عجیبه که میگه بند به دنبال ربیه از ابن عبدالرحمن یا ربیه از ابن عبی فروخ این امام اهل الرعی اینه اصلا ابو حنیفه از این گرفته مؤسس رعی در اسلام در حقیقت ایشونه حتی رو جان ربیه اصلا رعی از بزرگان علمای مدینه هم هست. حتی زبان ما مصادق از بعض رواتو خود ما ظاهر میشه که حتی مثلا بین عرف نظر شدر در مصادق هم مقدم بودیم. فجعل الله فی داده که خیره بعد، بعد قال ابو طیب تبریف اما مد عبا عبی حنیفه به این نبو یک رحل غنا غنا رو اشخال میکند مه اباحتی شربن نبی و یجعل سما الغنا منزونو این هم راجعه به اون یکی و کلالکه مدهب ساره احل کوفه ابراهی نخهی شعبی همه سوری و غیره لختلاقه بین اون پیداله ما واقعا برای ما تقبلنه خودم میام تحجیب از اون و هم میکنم که حالا فردا از اون برشم بیخونیم چون ما دو طرف حت بکنیم فردا از اون برخری کسانی که باز اباهی خناه در نیان احل سنت اجازه دادن و کلال در این اهل البسر خلافون فی کراهیت کراهیت با... هم به معنای این به این دستوران فیغمبر ثابته و من امم ام می ام ام ام ام الا ما رو بیرم و بیدالله هم حسن بریم و اما مذهب و شافی فقال ارغنام محروحون یشبهون باطل و من استکسرمه این مال خودش ترد و فاوه صفیه هم ترد و شهادت و و ذکر عبالفر رجب از امام احمد بن همبر سلاث روایان ایه گروازی که قناه حلاله بعدم و قال وقت ذکر از خواب اونا انا, انا حبیبت خلال و صحابه ای فران اباحت القناه و اینما اشارو الى ماکان فی زمانه ما منال قصائد زهبیات شبیه اونی که از امام سجاد برمانه رو کرده شده. و علا هازا یخمل مالم یک رحو احمد یعنی مراد احمد از غنات صدای خوبه که اشعار مثلا قیامت و زهدیات و ترفانی خونده بشه و یدول و علیه انهو سوئل احمد ان رجل ماد و خلط ولدن و جاریتن مهمیه سؤال این بوده فهتا جسدی و الابی الجاریه قال طبا علا انها سازجتون سازجه این ساده فاسی خودم لا انها تو. این ها تساوی ثلاثین الفن و لعنگه این بی از سازجتن تساوی اشرین الفن با صفت هزار بدون این صفت بیس هزار فقال لا تبا الا الانه ها سازده قال ابو به این نما قال احمد حضا لعنها به جاری لا سقنی به قساعد الزهر بل به اشعار المطبس المسیرته ایلالعش و حالا دلیل رو علا انرغنا رو بس همون شده اگر دیگه حالا تا آخر این مطلب بله یه مطلب دیگری هم اینجا بخونیم از اینشون قال ابو قاضی ابو بکرس عربی که از آراعشنم که بسته اکنونم اندولسیه و اما سماق الغینات سیجوز ول رجود یعنی زنهای مغنمیه. امیاس معجینات جاریه. دستش بگیرم برادر زادیان پرفسیدن که لیس شیون منها علیه حرامند. لا من ظاهر آولا من باز میگاریشه. فکر یوم نه من از خلاصه بسوت آها. اما اندولس لا ادوجود کشاکود نساد رجال لا هرکل اعصاره لبا. این غنایم در کلمه اینجا بله ظاهرا مرادش همون حسن صوت باشه و اینها باشه نه مراد با همراه بودن با اون جاده دیگری بس اللہ علیه